بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و السلام و السلام علی اخرق الانبیائی و سید المرسلین و آمین و صحبی اجمعین و بعد جلسه گذاشته بحث معانی, معانی یکی از معانی فطرت در اصطلاح بود که گروهی گفتن که اصل فطرت همون مبدأ خلقت انسانه یعنی انسانی که خطرت روی خلقت شده منظور اینه که انسانی که جهنمی هست جهنمی هست, جهنمی هست از همون اولی که بوده تا آخری که هست. گو کسی که بهشتی بوده اونجا تا آخرش هم بیشتری هست. ادلهایی بهش صدلال کردن. از جمله اثر ابن عباس بود که می بیاد ما لام کن ادري مافات از سماوات. حتی رأی عربیانی اختصمانی فی بیرن. قالا حدمو آن فطرتها و قال و آن فطرتها ایش قطتها که معنی لغتش گرفتن و اون گفتیم که معنی لغبی فتره تنها این نیست و دوم اینکه خیلی از کلمات هستن که در شعر و کار برده شده بلی این مفهومش از لغت فرا کرده مثل بحث کلمه ایمانی که قبلا ما بهش اشاره داشتیم استدلاع دومشون بحث این بود کما بده اکم تعودون فریخن هده و فریخن حق عليهم الضلاله، کما بده اکم تعودون لب مقلب رد ما این بود برای اینکه اصل عود و اعاده در این آیه که به ششاره شده زندگی دوباره هست یعنی بعد از اینکه انسان زیسته هست دوباره باز بر اگر قرار بود فطرت همون مبدع باشد از اول تا آخرش استمرار داشته باشد دیگه اعاده و بازگشت معنی نداشت این به مطلب هرچند که ما کنج وجه در رد این مسئله و استلال به این آیه داشتیم لیکن این لبه مطلبمون در اینجا خلاص میشه. سه بومین بحث نوسا و خز بود و اون بچه ای که خضر میاد و او را میکشه و اما الغلام و فکن ابواه و مؤمنینی این آیه که بحثه که اون خضر میاد و اون بچه را میکشه و گفتن که اینا این شخص بچه کافر بوده و چون اطلا نوشته بود از همون اول که کافر در نتیجه اگر میزیست کافر میشد و کافر هم بوده ما رده بر این ها داده مطلب ما این بود که دلالت قرآن و دلالت خود حدیث که در تفسیر این آیه وارد شده بر اینه که اون شخص کافر نبوده اون بچه اولا تکلیف داشته دو در نص حدیث آمده لأرفقه ابویه تغیانم و کفره لأرفقه یعنی پدرش اگر میموند اگر میماند کدارش پدر مادرش رو در زحمت می‌انداخت و در کف می‌انداخت و حتی انکار کار یا در خود یا است، نوع است، است، است، استدلال خود خضرم بر همین بر همین مبناس میگه و امل قلع و کنوا بهم مومنین فخشین ان يرقههما طغیانا و خوف ان يرقههما این در آینده بیاد اونها را لغت عربی خیلی واضح در آینده بیاد و اونها را خسته بکنه و در کف به اندازه پس هنوز کافر نشد و هنوز پدر مادرش عذیت نکرده قبل از اینکه مسئله رخ بده در این مطلب رو باشه و چهارمین استدلالشون به این بود تو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن که گفتیم بحث قضا و قدر هست و رفتی اصلا به بحث فتره زمان نه لو بحثش مفصله لیکن امروز با حدیث دیگر و استدلال دیگر و رد دیگر استدلالشون استدلال پنجمیشون از مهمترین استدلالشون حدیث عایشه هست میگوین که عایشه رضی الله عنها نقل میکند که رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شدند که بر جنازه بچه ای از انصار نماز بکنند دعی رسول الله صلی الله علیه وسلم الی جنازه صدی من الانصار یک بچه ای فوت کرده بود گفتم که به لذات بشن بیاین نوکوش نماز بخون تو یا رسول الله تو با ها گفتم یا رسول الله بهشت طوبا برای این بچه بچه از دو تا مسلمون درست شده رسول من از اطاری پرندگی ای از پرندگان بهشتی این بچه نوزاد این بچه ای که الان فوت شده گناه نکرده پاک و نه گناه نتیزی پدر مادرشم مومنه این بچه مون اصل حدیث اصل در بخاری و مسلمه اینی شکر دسته حتی دست شد باشید رسول من عصافیر الجنه لم يعمل سو و لم ندرکه پرندهی از پرندگان به اشتیه هست نه گناه انجام داده و نه هم رسیده که گناه بکنه نه به گناه رسیده فکر قال رسول الله صلی الله علیه سلم. او غیر ذلك؟ او غیر از یا يا آیا او یا غیر از این يا یعنی این کارا استکامه انگاری یعنی حرفه یا عائشه یعنی است یعنی از کجا معلوم که بهشتیه یعنی تریمیش بگیره خاطر از کجا معلوم که بهشتی نگفت که بهشتی نیست نه. از کجا معلوم که بهشتی شاید جهنمی باشه شاید نباشه او غیر از ذلك يا شاید غیر الیم باشه ان الله خلقا للجنتی اهلا خلقاهم لها و هم فی اصلاب آبائیه برای خداوند خداوند مخلوقات و خلقات کرده بهشتی و مخلوقات خلقت کرده جهنمی و اونها هم یعنی این خضیه مشخص شده بود وقتی که در کمران پدرانشون بودن یعنی قبلتی که به دنیا بیا مشخص بوده که کی جهنمی هست که بهشتی هست بچه استدرالشون هم واضحه بر اینکه، انسان اینها ها لبه مطلب از آخر حدیث گرفتن بر اینکه انسان جهنمی و بهشتی مشخصه از وقتی که در کمر پدر مادرش یعنی هنوز به دنیا نیمده هنوز بچه تولید نشده مشخصه که بهشتی که جهنمی در نتیجه فطرت مبدع انسان یعنی از همون مبدع تا آخر همش یکیه در کمر پدرش روشه شده کافر تا وقتی که از دنیا بره همش هم کاخره هر چه بیاد نماز بکنه و شهادت هم بگه مهم آخرشه که کافره جواب بر ها اولا رسول الله صلی الله علیه وسلم در این حدیث حکم جهنمی بودن این بچه رو نمیده اولا حکمش نمیده انکار میکنه بر گفته عائشه که شاید شاید این شخص بهشتی باشه الله صلی اللہ علیہ وسلم خودش حکم نمیده که نه جهنمی بهشتی گفت که این فرنده از پرندگان بهشتی گناه نکرده و نرسیده به گناه گفت رسولان شاید غیر از این باش یا شاید غیر از این و اونم خاطر اینی که اون شخص اون بچه مدح نشه یعنی تعریف نشه یعنی از حالش مثل خوشایندیش ما نگید مثلا حد هر که هر بچه ای از مسلمانی به دنیا اومد خلاس خوشاینده عاقبتش به خیره و, و بهشتیه حکم بهش ندید این یک بحث عدم تعییر بهشتیان و جهنمیان یعنی اگر گفتی که این بچه بهشتیه یعنی قضاوت کردی برای اینکه که این شخص بیگناه هست این شخص باید در علم خدایی وارد بهشت بشه دو بومن. رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بر آقایش رد میدن چه رد میدن رد بر این که یک مسئله غیبی هست آقایش حت نداره که تضابت بکند گفت که پرندهی از پرندگان بهشتی او وغیر از ذهنه عایشه درست درسته دارن انکار میکنن چون دارن بر علم غیب حکم میدن از کجا معلوم که این بچه اگر بزرگ میشه جهنمی بوده درسته؟ شاید بزرگ میشه جهنمی بوده. لازم این که پدر و مادرش مسلمانند این بچه هم باید مسلمان باشه نیست چون ما خیلی ها میبینیم پدران و مادران مسلمانند بچه کافر نوح علیه حسنان بالاتر از این مثال بچهش کافر بود درسته؟ بچهش کافر بود پس پدر و مادر شکمه یعنی مسلمان بودن پدر و مادر دارید بر مسلمان بودن اون بچه‌ون وزاد نیست به خاطر همینی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در دنبال حدیث می‌فرمایند خداوند برای بهش کسانی را خلقت کرده و برای جهنم هم کسانی خلقت کرده یعنی از کجا معلوم که این بچه از جمله کسانی که برای جهنم خلقت کرده شده آن نباشند نه اینکه از اول تا آخر نوشته شده که اون بچه جهنمینه سومه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که انکار میکنن انکار بر شهادت و گواهی عایشه است عایشه داره گواهی می شهادت میده برای اینکه این شخص حتما بهشتیه وقتی که یک شخص شهادت و گواهی دادیم که بهشتیه مثل اینکه به یک مسلمان معینی مثلا بگم یک از شماها بگم تو بهشتی هستی یا شما به احتیاج هستید فرق نداره الاچه بچه باشه چه بزرگ باشه ایشا بزرگ باشه بله اپلو شده لازم آخرین مطلب پنجمین پنجمین است ان شاء الله در بشه پیدا بشه در اینجا این فرزند تابع پدر و مادره درست؟ این فرزند تابع پدر و مادره چرا عایشه اومد حکم مسلمانی داد به این بچه؟ چون پدر و مادرش مومنن درسته؟ آیا عایشه میتوند به پدر و مادرش حکم بهشتی بدهد؟ میتوند؟ نمیتوند حکم بهشتی بده. حکم بهش بهشون بده وقتی که به پدر و مادر نمیتونه بده چطور به فرزند میده درسته؟ از انکار رسول الله فرقه هم واضحه. همانطور که به پدر و مادر نمیشه حب داد به فرزند در نمیشه حب داد چون تا به پدر و مادره حالا که انسان هفت از خودش مستقل لیکه بخادر همین هست که امام بخاری در صحیحش بابی داره باب لا یقال لفلان شهی استثنا میکنه حالا باب فلانی که به کس شهید گفته نمیشه مگر کسانی که الله و رسول حکم مشاهده شوندهند بلی عمر بن خطاب عثمان ابن عثمان حکم شهادتش و شهادت اونها خبر دادن اطلبتي او حسنا انك عليك صديق و شهيد ثابت بشه وحول که باخت یک صدیق و دوتا شهید همون اکبر بن عاطف عمر بن خطاب به حکم شهادتش شونده از غیر خبر دادن ولی ما نمیدونیم و امام بخاری به این می میکنم شخصی در جنگ کشته شد نیده در سیناش رفت درد میکشید نگ رو فرو بر تا خودش رو خلاص میکنه خودش رو خلاص کرد اوورد ن پیشرس الله گفت این شهید بهشتی می. گفت که از کجا میدونه که بهی بهشتی باشه جهنمیه تی کل را تو در مکه نیده در سیناش که جهنمیه چطور یا را با حسات بم فرمولدن به خاطر اینکه این شخص خودشو خلاص کرده و دست خودش سب نکرد تحمل نکرد خودشو کشت حالا میشه یک شخصی در معرکه دیدیم تیر خورده تو سینهش نمیدونه هم شده توسط دشمن کشته شده میتونیم بهش شهید یا خودشو بمبسته به کمرش منفجر کرده میتونیم بهش بینیم شهید نمیتونیم بگیم چرا؟ چون از غیب مطلع نیستیم می‌دنین که بر خداوند قضاوت میکنیم که ولی این شخص حتما در علم خدایی بهشتی است نه باید برای خداوند قضاوت بکنید و بر علم خداوند توکل کنید. ما اینکه اعتراض رسول الله صلی الله علیه و سلم بر گفته عایشه به خاطر گفتار عایشه است که میگوید این شب پرنده‌ای از پرندگان بهشتی است که گناهی انجام نداده و نرسده به گناهان. رسول الله صلی الله علیه و بهش توصیه می‌کند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 اما خطا از بخش که گفتی مطلب بود. و اونم این که ما در روایت داریم که در سعیه بخاری داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرماید که من در خواب دیدم که ابراهیم علیه السلام اه... کنار درخت نشستن و دیدن که دوربرش برش بچه هایی هستن فقال له هذا ابراهیم و هؤلاء اولاد المسلمی و اولاد المشرکی دوره ابراهیم کسانی دیدن بچه های دیدن گفتن که این فرزندان مشرکین هم فرزندان مومن قال در رسوله و اولاد مشرکین اولاد مشرکین هم همینطور در رسوله فرمودن آری نعم اولاد مشرکین بله و بچه های مشرکین امام ابن کسی در تفسیر سوره اسراء در تفسیر فرموده فرموده, فرموده الله جدش امامات کن نمعذبین حتی نبعت رسوله گفتی خیلی زیبا د بله در اینجا اومده که مشرکینم های مشرکینم در بهشت هستن لیکن هر بچه مؤمن هر بچه مشرک خیر چرا روایت ابوی علی داریم و بزا با سند صحیح و حسن روایت مختلف از انس بن مالک رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یؤتى بأربعة یوم القيامه در تفسیر اما کنن معذبین حتی نفعت رسیم و عذاب نمیدیم تا اینکه رسول و قیانبرانی به یعنی کسانی که انسانها را نجات بدن. چهار نفر روز قیامت میارن بالمولود بچه با نوزادی که قبل از تکلیف شده بالمولود والمعتوه کسی که تمعقل به یا دیوونه هست والمعتوه و من مات فی الفترة و کسی که بین فتره یعنی بین رسول آساسه نبه بعثت عیسیٰ علیه السلام در اون ششتت سالی که بین عیسیٰ علیه السلام و رسولده هست و من ماته فی الفتره و شیخ الفانی الهرم و پیر مردی که خرفتش داده و شیخ الفانی بس چه نفرد؟ نوزات کم عقل بی عقل. و کسی که در فترت فوت شده فترت بطید نقطه و پیر مردی که خرفتش داده اینها روز قیامت ورده میشن. کلهم یتکلمو به حجت هر کدوم دلیل و مدرکش میاره فیقول الرب تبارک و تعالی لعون مقیم مننا اونجا هست که الله جلشانو دستور میدن که قطعی از آتش برپا بشه قطعی از آتش برپا بشه ابرزه و یا قول که ابراز بشه یعنی اون آتش رو بیارم قطعی از آتش و یا قول لهم اینی کنتو اگعدو الى عباد رسولم اینم من برای بندگانم پیامبرانی از خودشون میفرستادم در دنیا خدا الان به خودمون حمل مصطفی فرستاده و اینی رسول نفسی ایلیکم و اینجا هم من پیامبر خودمم به شما من پیانبرم خودم به شما میرسونم الان مستقیمن او قلوم این آتشی که بی‌بید برید وارد بشید این چهار نفر دستور بده شما میده که برن وارد این آتش بشن. قال فَيَقُولُ مَنْ كَتَمَ کت من الْكُتِبَ عَلَيْهِ الشَّقَاءُ يَا رَبِّ أَنَّنَا نَتَحُلَّهَا وَمِنْهَا كُنَّا نَفِرْ نَفِرْ. اون‌هاایی که شکاوت می‌دهن، بدبخن، میگه ای, ای پروردگار، چطور ما داخلش بشیم از چیزی که ما رو بسیزن؟ ما از آتش فراریه، که دیو وارد آتش بشیم؟ دستور خدا را نمی پذیرند با وجود که خودش بهشون میگه من پیانبر خودمم یعنی من خودم پیانبرم مستقیمن بهتون می اونجا پیانبرم بودم که بهشون میگفتن بهشون جهنم اینجا من خودم دارم بهتون میگم دستور من را بپذیریم نمی پذیرند کسانی که نمی پذیرند خود جهنمی. قال و كس... من کتب علیه السعاده یموضی فیقتحی مفیه مسرعه کسی که سعادت مند مستقیمن حالا اون مولود چه بچه کافر و چه بچه معمد ت که نداره مولود هر موردده باشه و قول و ماه و تعاله ان تله اشد و تکیبا و معسیا به آنها بهوارد نشدن می که شما اگر برون هم می اوومدن شما تکزیبشون می کردید و دثری آنها می کردید و از پ و حولاتات این اینهایی که درند داخلش بهشتی میشن با آن که نرفتم جمع نمی پس جمع و توفلت بینین ازله چه اینکه این اشخاصی که کنار ابراهیم بودن از اون نو از اولاد مشرکین و اولاد مسلمانان بعد از این امتحانه بعد از این امتحان بعد از اینکه این مرحله رو کردن بله خیلی از اولاد مشرکین هستن که لایقه بهشتن و خداوند هرچند که در اینجا پدر و مادرشون مثلا کافر و مشرک بودن لیکن خداوند اونجا بار, بار دیگر امتحانش دیگه میکنه اگر خوب از اون امتحان و مج وارد بهشت خدایوند میشه وارد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 مبدأ روحانی انسان وقتی که خداوند شهادت و جواهر انسان گرفت، از اصل خلقت است همون وقتی که آدم تلخش شد. باید رسول الله صلی الله علیه و سلم در این حدیث، در اون حدیث همون کل مکمّم الملک إلا يلا الفتره، فبواهی حاودانه وی و وی نصرانه باید بگو که اوی مسلمانه باید بگو مسلمانش هم نیکه. چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم نگو فلان که فلان مدرن هنگام مسلم می‌کنند؟ پس وقتی که مسلمان نیورد پس یعنی حالا به صورت دیگری بگیم به دیگری بهتره و اونم این که اگر مقصد بدعت بود اگر مقصد بدعت بود تنصیر و تسلیم و اسلام اسلام مسلمان کردن با هم فرقی نداره یعنی لازمه ی فبافی و هادانی و یا اسلام و یومدجسانه میشدم بگیم و آیا مسلمانه در صلیت کل رسول الله صلی الله علیه و سلم نگفتن که مسلمانش میکنه؟ یعنی اگر قرار بود که این تنسیر بر اصل خلقت بود، اصل بدعت بود، که حرکت نظرانی ها، حرکت مسلمان ها میشد، پس باید بین اینها، یعنی بین اینها هیچ فرقی نبود و مثل هم بودن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که مثال میدادن، که البهیمت, هل البهیمت جمعه هل تحسون حسونه من جدعه كما مثلت جل بهیمت بهیمت و بهیمت جمعه هل تو حسونه من جدعه رسول الله صلی اللہ مثال میزنم؟ نوزادی که به دنیا میاد آیا میبینید تو اون چشم شکور باشه یا گوشاش بریده باشه؟ نه چنین نیست ما این چنین نمیبینیم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 اگر اصل مبدع باشه که همش یکی باشه حرکتی جهنمی جهنمی ها کسی بهشتی بهشتی پس دیگه تغییر بیمعنه است در این حدیث همونطور که در اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان فرمودن بعد دوبه من این که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یک حیوان صالیمی مثال می همانطور که حیوان سالمی حیوان سالمی به دنیا می آورد دلیل بر اینه که فطرتی که در انسان هست سالم و کامله انسانی که تولد میشه سالم و کامله در صورتی که اگر بگیریم که فطرت به اصل که جهنمی و به هست ناقص یا کامل مال بعضی یا کامل مال بعضی یا ناقص درسته در صورتی که در اینجا ما داریم که چی فطرت کامله و مثالم هم چیزی که کما تن ذل بهیم، بهیما تن جمع همونطور که حیوانات سالم پردندی سالم به دنیا. یعنی انسانی که به دنیا میاد سالمه ولی در نزدینه ها اون که از جهنمی از همون اول نخالم بوده تشبیه رسول صلی اللہ علیه وسلم میشه اشتباه انسان از همون اول ناقص و از همون اول اشتباه بوده بله سه من اگر اون بچه ای که به دنیا میاد قرار بود که از همون ابتدا شقاوتمندیش و سعادتمندیش مشخص شده باشه باید این مسئله این تغییر وقتی میشد که هنوز روش در اون جنین دمیده دمیده نشده هنوز روش دمیده نشده چرا؟ ست ازم میم کمات ت توجر بهیم من بهی متجان ها تو چه سونه بیا میجد آیاید می, می بینید در ها گوش بریده باشه دماغ برده و چش بریده باشه درسته؟ بریدن برش چش کندن چش و بریدن گوش چه موقع حاصل میشه؟ بعد از به دنیا آمدن درسته بعد از اینکه به دنیا اومد اون شخص این کار گش اینین تغییر روش حاصل میشه. پس اگر حرف ایشون درست بود بر اینکه این تغییر از اصل مبدع بوده باید قبل از ولادت می شود. نه بعد از ولادت اینجا تغییر بعد از مثالی که رسول صلی اللہ علیه وسلم می دنه مثال این تغییر بعد از ولادته نه قبل از ولادت مثال که دوتا حیوان سالم حیوانی به دنیا میارن که اون حیوان بعد دوشاش بریده میشه چشماش بریده میشه پس مثال از خیلی واضحه بل اینکه این تغییر بعدن حاصل میشه اگر حربشون درست بود باید قبل از اینکه در همون چهار ماهگی بعد همون موقع قبل از اینکه روش نمیده بشه انسان بشه انسانی که بلا در اون جنین ساخته میشه و در همون در همه شکل مادر باید بوشهاش بریده می شود و چشمش بریده میشد اگر قرار بود که از همون اول مشخص و مثال باید چی می زنن رسول الله صلی الله علیه وسلم بله این خلاصه بحث رد ما بر کسانی که گفتن انسان از اصل مبدعش تا آخرش یک سعان تغییری نمیکنه و پتره توی معنای بدعایت خلق انسانه ای خلاصه باد فکر نکنم میشه این نیاز داشته باشه که این من پس رو باز بکنیم، من پس بعدی من قول سربمی هست از اقوال مخالفین آخرین قول قول مخالفین از قول نه که مخالفین بگیم، برا توجیه بعد از علماء، برای اینکه فترت انسان فترتی هست که بنی آدم در بنی آدم گذاشته از شناخت، از شناخت و از از شناخت ایمان و از شناخت کفر. انسان روی معرفت و شناخت خلقت شده و انسان یک تشکیسی داره حالا هرچنکی این نوع شماحتی هست بین این قول و قول اول که انشالله تجیب و تحلیل این حرف خیلی زیاده که انشالله برای جلسه ای آینده هفته ای آینده درش انشالله اینجا میبندیم تو هفته ای آینده سبحانه کنا و پنده